یه تیکه بگم فقط سری رد میشم هم نحج البلاغه داره در خطبه دویست 2020. ولی نحج البلاغه فشرده شو داره همه شو نداره مفصلش رو که این تیکر من میخونم توش هست جلد یک کتاب کافی صفحه 458 حدیث شماره 3 موقعی که امیرالمومنین المؤمنین سلام الله علیه رو دفن کردن این جملات رو گفتن در نحج البلاغ خطبه دویست و بیست اومده در کافی همش اومده که این قسمت در بحث کافیش هم هست من یکیگه یک رو میخونم امیر المؤمنین خطاب کرد پیغمبر رو همون جایی که قلت سبری یا رسول الله انصفییتک ای رسول خدا در اثر داغ دخترت دیگه صبر من کاهش پیدا کرد و چی؟ عین الله تدفن ابنتو که را در بیش چشم خدا یا رسول الله من دختر تو رو مخفیانه دفن کردم و توحزم و حقها حق او رو حزم کردن و بردن و تمنع و ارسوها ارسش رو معنی کردند و باز داشتم ولم یتباعد العهد اینو خوب دقت کنید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 که باید من علی دختر تو را شبانه دف کنم فبعین به الله تدفن اب سرا سررن و توز ارثها و ولم تعدل احد هنوز این ع چیزی نگذشته بود.